یالا سی پنج و سی که وایت فکر کردم موسی اموزش آمیه ممکن است آن بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله سلام. سلام. و سلام. محمد و اهل طاهرین المعصومین روحی و ارواح العالمین الله الفدا با تأکل بر خدای متعال و توسل به قیامبر گرامی و اهلمه تهتار علیه خمس سلام بحث قواعد رو دنبال میکنیم جلسه قبل بحث تقدیم مسلحت دین بر نفس رو یک توضیحاتی دادیم و به مقوله های مربوط به اون پرداختیم ما یک تفکیک در بین اینجا چند مفهوم رو برجسته کردیم تضاهم بین تأمین و تأمین تأمین و رعایت تأمین و حالا دو طرف داشتیم مثلت دین مثلت نفس این طرف یک طرف تأمین مثلت دین با تأمین و نفس تأمین مصلحت دین با رعایت مصلحت نفس، تأمین مصلحت دین با سیانت بود. گزاره دوم رو رسیدیم رعایت مصلحت دین با تضمین مصلحت نفس و بعد با رعایت، با رعایت، بعد رعایت با سیانت بود. گزینه سوم سیانت بود که خودش سه بار تکرار دوباره می شد سیانت از مثلت دین با تأمین مثلت نفس با رعایت مثلت نفس و با سیانت نه گزینه رو ما تفکیک کردیم خب به این صورت حالا کسی مطرح نکرده می توانه کمک بکنه برای شوقوقات و تفکیکاتی که بین در واقع سه مقوله تأمین و رعایت و سیانت که دو طرف رو ما ضرب کردیم و از ضرب سه مقوله و سه گونه و سه شکل پاسداشتر تر مسلحت مسلحت دین در مسلحت نفس نه مقوله رو بردیم تأمین رعایت زیانت تأمین این که در واقع نبود دنبال تحققش بودیم رعایت ایک مسلحتی میخواستیم ملاحظاتشو یعنی باش مخالفت نکنیم و سیانت مسلحت محققی بود که میخواستیم از اون، از وجود اون محافظت بکنیم خب پیش رو براش مطرح کردیم خب حال بحث دیگه که ما داریم و موارد دیگه یا موارد داریم وچه سبوتیش رو بطرح کردیم ما اینجا در واقع یک بسته از چند مسلحت رو داریم که در سطح ضروریات میتوانم مطرح باشند در سطح حاجیات و در سطح تحسینیات چند گونه رو داریم خب این یک مصلحت نفسی دینی بود با مصلحت نفس که در رتبه بعدی در در واقع یک نوع دو نوع بودن در یک رتبه طبیعتا مصلحتی که در مرحله ضروریات باشه با مرحله دومی که در مرحله حاجیات یا تحسینات باشه مقدمه خب این که پیشورد بود اون تقدم رتبیستی اما تقدم نو این که نوع دین و نوع نفس مقدمه مورد ای که ما داریم دو نوع حالا نفس با عقل مصلحت نفس خب بر به ابعاد مختلفی داره مصلحت نفس این مورد مساطیق متعددی داره در چند مستاق ما می توانیم اون رو سراغ بگیریم یکی این که از همون شبیه اون بحث قبلی در واقع یک مسلحت رعایت بود یه تأمین بود تأمین بود بعد رعایت بود و سیانت شبیه اون بحث در واقع تأمین مصلحت نفس این یک مقوله است تأمین مصلحت نفس یعنی چی؟ یک نفس متزمنه در واقع ایجاد و تحقق بخشی به مصلحتی که وجود ندارد و میتواند در خدمت نفس و جان باشد تعبیره. تعبیره در خدمت نفس یا جان باشد خب این تضمین مصلحت نفس بود خب در واقع مصلحت وجود نداره ما باید اونو تضمین بکنیم به تعبیر دیگه مصلحت ناموجود باید تحقق پیدا کنه و ایجاد بشه این ایجاد خب ناظر به این مفهوم را تأمین به کار میبریم مفهوم رعایت رعایت مسلحت نفس این ناظر به چیه؟ این که این مفهوم ناظر به در واقع عدم مخالفت با مصلحت موجودی است که به نفس و نفس یا جان برمیگرده این جان وجود داره نفس وجود داره نفس زنده است در واقع نفس منظور به چه معناست نفس یا جان یعنی اینکه که خلاصه انسان محترمی نفس محترمی وجود داره در نظر ما میگیریم میگیم آقا این نفس خلاصه خود مثلت جان میتوانه وجود داشته باشه انسان وجود داشته باشه یا ممکنه وجود نداشته باشه جان انسان محترمه و که در واقع جان حالا همه انسان ها رو نگیم فیل جمله جان برخی انسان ها و, و برخی حیوانات محترمه به چه معنا به این معنا که باید از اون سیانت شود خب مصلحت که به چه برمیگرده؟ اون مسلحتیست که اون مسلحت وجود نداره و در خدمت نفس و جان می توان قرار بگیره خب مسلحت ناموجود باید تحقق پیدا بکنه چه اون نفس حالا ممکنه نفس رو با تن هم جدا بگیریم طبیعتا طبعا مفهوم نفس یا تن یا جان با مفهوم تن یا جسد هم خلاصه مناسباتی داره یعنی ممکنه در واقع فردی نباشه روحش از بدن جدا شده باشه در نتیجه سیانت در واقع مساله مربوط به جسم و کالبد انسان میتوانه تا اندازه ای متمایز از مصلحت جان لحاظ شود چرا؟ چون که اگر زنده نباشه جداست در واقع اگر انسان زنده باشه مساله مربوط به کالبد انسان میتوانه خلاصه به مساله جان و روح آدمی خلاصه ناظر باشد یا با اون اشتراک داشته باشه اما اگر انسان روح انسان از کالبد و جسم او جدا شده باشه تا اندازه میتوانه خلاصه این مفهوم خلاصه میتوانه متماعز از مسلحت جان لحاظ بشه خب چرا؟ چون که اون مسلحت مثلا میخواستیم حفظ جان بکنیم در واقع حفظ جان در واقع به تعبیر دیگه حفظ جان ناظر به ا مثلا بگیم مصلح برخی مساله مربوط به جان از جمله حفظ اون ناظر به سیانت از در واقع تعلق روح به جسد جسمان به جسم جسد جسمانی او بود خب این پس یه مقوله خاصیه بنویس این ما یه مقداری تفاوت می توان قائل بشیم چون در این میان بعضی جهان رعایت تأمین یا بگیم تأمین رعایت یا حفظ مسئله نفس می تواند در صورت زنده بودن نفس محترمه به بخش از جسد او برگردد و با تسامو سخن از حفظ حلس جان مطرح شود ب... یا به تعبیر دیگه میتوانه در واقع احکام. مربوطه به تأمین مسال تأمین رعایت یا حفظ مسال جان می توانه خلاصه در واقع به معنای حقیقی و اون لحاظ نشه در این صورت به ارال یه خلاصه مصادق خاصی مدنظر بخشی از اون می‌توانم مورد نظر باشه. خب، این هم یه توضیح مفهومیه پس یک جاهایی ممکنه من این نیست که ما این رو در نظر بگیریم اما در مجموع اون سگانه یه تامین مسلات نفس. و رعایت مسلحت نفس رو اینجا میتوانیم مفهوم تأمین رعایت و حفظ رو اینجا میتوان داشته باشیم تأمین یعنی که اون مسلحت نیست باید ایجاد بشه اما چه اون در واقع اون خود جان خود نفس چه اصل نفس خلاصه بریده و مجزای از روح تصویر شه یا اون که چی باشه بی همراه اون خلصه باشه و اون نفس محترمه برخوردار از حیات باشه. بنابراین ما باید اینها رو در نظر بگیریم در مجموع باید هر سه مقوله تأمین رعایت و حفظ مسلحت نفس مد نظر قرار بگیره خب پس تأمین مسلحت نفس ناظر به چی بود؟ مسلحت خودش نیست اما در رعایت مسلحت نفس اینجا این مفهوم ناظر به یک مسلحت موجودیست که خلاصه این مسلحت میتوانه به روح فرد روح و در واقع اون اصل حیات و اصل نفس بازگردد چنان که می این مسلحت میتوانه ناظر به رعایت مسلحت متعلق و پی‌دارای برخوردار از پیوند با کالبد جسمانی مطرح شود همونطور که در واقع این همونطور که رعایت مصلحت نفس میتواند ناظر به رعایت مصلحت کل نفس یا بخشی از حالا نفس که میگیم روح مجرد کل مثلا اجزای اگر برای اون جسد کلی در نظر میگه کل اجزای جسد خلاصه نفس محترمه یا بخشی از اون در نظر گرفته شود بنابراین ما الان این رو چرا داریم تره بحث میکنیم میخوایم ارز کنیم که در واقع اینجا ما فرض های مختلفی داریم که در مسئله شناسی باید در نظر بگیریم خب پس در مجموع باید باید موارد مختلفی که در مسئله شناسی مسئله شناسی مربوط به تضاهم حاضر رو در نظر می گیریم تضاهم بین نفس و دیگر موارد خلاصه جای طرح دارند در مسئله شناسی مربوط به تضاهم بین نفس و دیگر موارد مانند ارز آب مال خلاصه جای طرح دارند حفظ مقوله باید بعد نظر قرار بگیرن به تعبیر دیگه توجه به این تنوع میتواند به تنوع در مسائل مربوط به تضاهم خلاصه مصلحت نفس با دیگر مساله بی انجامه بنابراین باید این رو لحاظ کنیم پس در واقع اینجا ما داریم توسعه در مسائل رو دنبال میکنیم هم مفهمش رو در نظر میکنیم خب مفهوم مقوله سوم چی بود سیانت و حفظ بود سیانت سیانت و حفظ نفس هم در واقع حفظ مسلحت نفس یا مصالح نفس این دو تا رو می توان در نظر بگیریم خب سیانت از نفس یک و قول است این مفهوم متمایزی هم ما اینجا می توانیم داشته باشیم در واقع سیانت از نفس به عنوان متعلق مصلحت می بایست وجود داشته باشه خب اما در سیانت از وجود او هم سیانت و حفظ و حفظ خود نفس محترمه هم واجبی برخوردار از خلاصه مصلحت است مصلحت چیه؟ در واقع مستقل و ضروری است این نفس نفس محترمه خب همین که در واقع به تعبیر دیگه همین که فرض محترم بودن نفس مزبور نفس محترم با مختزیه چیه؟ مختزیه ضرورت سیانت از اونه خود این امر خود میتوانه به مسابه مصلحت مستقلی لحاظ شه که برخوردار از در واقع رتبه ضرورته به تعبیر دیگه سیانت از سیانت و حفظ حفظ نفس محترمه مسلحتی ضروریست خود این این یه است خب این مورد های در جزء بحث ما هست بله در واقع اه، اه، سیانت از این عمری ضروریست و مسلحته هم هم از زمره مساله هست و هم مسلحتی در رتبه مساله است. خب حالا آیا مساله نفس محدود به حفظ خودشه میتوان گفت که مساله مربوطه به یا بگیم مسلحت مربوط به سیانت سیانت و حفظ نفس فراتر از خلاص در باقی مساله خلاص مساله مربوط به سیانت و حفظ نفس فراتر از مسلحت سیانت و حفظ خود نفس در واقع به تعبیر دیگه مصالحی میتوانند خلاصه تصویر بشن بر میتوانند تصویر شوند که به نفس باز میگردند و اونها هم باید حفظ شوند یعنی یکی خود مسلحت حفظ نفس که این یه امر مهمیه یکی از موارد خود مهمش چیه؟ سیانت از در واقع خود نفس باید خود نفس باید حفظ بشه اما آیا محدود به این مساله می توانن تصفیر به نفس در می‌گردند که باید سیانت و حفظ شوند در این میان یکی از اینها می توان گفت که در واقع یکی از مسائل مربوط به سیانت و حفظ مسائل مربوط به نفس مصلحت چیه مصلحت سیانت و خود نفس از مسائل متعدده اون رو نمیتوانیم خلاصه محدودش بکنیم خب در این مفهوم نفس متعلق در این بحث خلاصه نفس متعلق مسلح ولی بعد وجود داشته باشه تا نوبت چی تا نوبت به طرح تا نوبت به بحث از ضرورت سیانت و حفظ اون خلاصه برسند اما این مساله نفس می توانند متعدد باشند به تعبیر دیگه مساله متنوعی می توان خلاصه ناظر به نفس می مطرح کرد ب اجازه چند لحظه خب پس اینجا در واقع از یک منظر ما گفتیم تامین مصلحت مصلحتی نفس خودو مصلحت نبود مسلحت نفس هست اون مساله رو ما باید حفظ کنیم حالا نفس یکی خودش به هر حال وجود داره ما باید اینها رو بشنسیم و اونها رو تعمی کنیم یکی از اصلی تره مسالهش چیه؟ سیانت و حفظ مساله نفسه یکی از اون موارد مهم سیانت و حفظ خود نفسه ممکنه شما بگید آقا مثلا تقویت نفس ارتقای نفس مسلحت مثلا ارتقای نفس ارتقای وجودی نفس اینها دیگه برمیگرده مسلحت رو چیه؟ یه قدم شاید بریم جلوتر از سیانت و حفظ این ممکنه بشه مثلا مسلحت چهارم اما به ارحال اون مسئله رو باید ببینیم اگر تنوع داره اون تنوع چگونه است ما اون رو دنبال کنیم خب ممکنه بگیم که آها نفس نفس ضعیفیست است ابعاد وجودی نفس قابلیت ارتقا داره بنابراین در فرض امکان ارتقای نفس میتوان از مصلحتی به عنوان مصلحت ارتقای وجودی اون ارتقای خلاصه غیر وجودی عملا برمیگرده به خودش ارتقای نفس سخن گفت این مسلحت به طور طبیعی از سنخ ارتقای وجودی اون خواهد بود حالا یه بحث دیگه است ولی برحال می توانیم این فرض رو مطرح کنیم البته در موارد دیگه اون مسلحت دین خب کار مسلحت ارتقای دین کار ما نبود مسلحت مثلا بگیم ارتقای دین دیگه اونجا شاید بیمعنی است تعبیر رو می توانیم به کار ببریم اما مسلحت خلاصه دیگه اینکه متناسب با خلاصه فرد میتونه مورد میتونه لحاظ بشه خب پس این یک وقت خب یک مفهوم دیگه پس اینجا نفس بود که در اون بحث قبلی بود متو اینجا تو این طرف اول بود ما میتوانیم این رو لحاظ بکنیم پس اگر برگردیم اون طرف در بحث قبل مثلت دین و مثلت نفس چند شیق رو ما در نظر گرفتیم خب گر این بحث میتوانه در واقع هم مکمل بحث قبلی باشه هم میتوانه مقدمه برای این بحث بعدی باشه که خب ما اگر بخواهیم مثلت خلاصه نفس رو به مثلت حفظ عقل مثلا لحاظ بکنیم چیه؟ پس تو اون بحث مسلحت دین این تکمیل است. چون طرف دوم بود خب اونجا ما تفکیک رو قائل شدیم حفظ نفس و حفظ نفس محترمه اینجا الان بستش دادیم پس این فرض تکمیل بحث قبلم هست اما اگر ما بخوایم این طرف دوم رو بحث کنیم طرف بحث دوم ما در اینجا چیه؟ مسلحت عقل خب اینجا پس نفس در واقع مفهوم شناسی که ما داشتیم خلاصه یه بخشش مربوط به مسلحت نفس یا جان بود که خودش توضیحات تکمیلی داشته شه. خب. اما طرف دوم طرف دوم ها چیه؟ مسلحت عقل در واقع مسلحت عقل عنوان مسلحت عقل رو باید ببینیم چیه مسلحت عقل در واقع متوجه موارد مختلفی میتوانه باشه در ابعاد مختلفی قابل طرح هست که اصلی ترین اون حفظ عقل است خب یه کسی عقل نداره ناقل صل عقل خب اه، در واقع اون یه کمی شاید از بحث ما بیرونه اه، در اه بحث از مصلحت عقل می توان برخورداری از عقل و عدم خلاصه عدم برخورداری از عقل رو لحاظ کرد برخورداری از اون و نیز ارتقا همینطور بگیم برخورداری تضعیف ظالم یا و همینطور خلاصه ارتقای عقل رو میتوان مد نظر قرار داد اما معمولا کدام بیشتر مد نظره اما معمولا بحث از سیانت از عقل مورد نظره در واقع سیانت عقل خلاصه در واقع یه چیزیه که مشکل جدی است آقا یک حکمی ناظر به حفظ عقل اما بحث رو میشه توسعه داد در بحث در تحلیل خاصگاه احکام و به تعبیر دیگه در مقام کشف علل یا حکمت ها و در مجموع و مناتات برخی از احکام میتوان خلاصه تلاش یا دقدقه حفظ عقل توسط شارع رو سراخ گرفت خب این دقدق شاره این دقدق در مقام امتصال در واقع در مقام بگیم ببخشید. جل توسط شاره در مقام جل لحاظ شده بازتاب این دقدق در مقام امتصال به طور طبیعی با امتصال خلاصه با امتصال مکلفان تامین خواهد شد این دغدغه یه بازتابی داره این دقدقه با امتصال مکلفان خلاصه ت... توسط اونها رعایت خواهد شد چونانکه شاره متعال این دقدقه رو در مقام جن داشته به تعبیر دیگه یا در نتیجه اینطوری بگیم در نتیجه احکام مجعول توسط شارع متعال همواره سیانت از عقل رو دنبال کرده و خلاصه در قالب های مختلفی این در قالب های تشریعی در قالب احکام متنوع دنبال کرده خب اما سیانت از عقل توسط خود انسان باید انجام گیرد این در نتیجه این دقدقه اگر بخواهد جزء خلصه جز دغده دغ های انسان قرار گیرد انسان ها قرار گیرد در مقام امتصال در مقام امتصال, در مقام امتصال به طور طبیعی با امتصال مکلفون توسط اونها توسط خلاصه رعایت خواهد شد یعنی سیانت از عقل است که شاره دقدقه داره اما انسانم باید این دقدقه رو داشته باشه خب تأمینش چگونه است رعایتش چگونه است خب این دقدقه رعایت خواهد شد و میتوانه در واقع از این طریق از این طریق تا اندازه تا اندازی که خلاصه به تکرینیات بر نمیگرده خلاصه بخشی از اون از این طریق تحقق خواهد یافت چنان که بخشی از اون چنان که خلاصه بر می سیانت از آخر بخشیش بر بخشیش به به امور تکوینیست بگیم مانند امور و برنامه های پزشکی و برنامه های به سلامت برمیگرده خب این مقوله مستقله پس این بس کار نداریم پس مثلت عقل می‌توانیم توانیم شبیه اون بس تأمین رو بگیریم ولی تأمین عقل که جا نداره ما ناظر به چی هستیم این که در واقع تأمین اقل و بگیم ایجاد اقل کار انسان ها نیست اما در واقع تأمین رعایت و سیانت مساله مربوط به عقل میتوانه توسط انسان دنبال شود. چنان شارع متعال در جعل احکام و هدایت کلی زندگی انسان ها این مساله رو در واقع آمین رعایت و سیانت این مسائل رو دنبال کرده خب بنابراین ما با دو مقوله مواجهیم این که زادن این که ما هم می توانیم بحث از خود عقل داشته باشیم ایجاد عقل که کار ما نیست درسته؟ اما سیانت از عقل اما در واقع رعایت عقل رعایت و بگیم رعایت عقل و سیانت اون میتونه توسط انسان ها و نیز توسط شارع متعال خلاصه دنبال شه زونه بر این موارد تعمیم رعایت و زیانت مساله مربوط به عقل هم میتوانه توسط انسان دنبال بشه چونان که شعره متعال هم دنبال کرد پس ما الان بین چی تفکیک کردیم رعایت عقل اون ایجاد عقل بگیم شبیه تعمیم عقل رعایت عقل و اختزاعاتش و سیانت عقل خود عقل رو سیانت کنیم خب این یعنی به عنوان به عنوان یک قوه انسانی می تواند دنبال میشه خب پس این